جهن خودخواه نوشته ی ریچارد داکینز فصل 12 بخش 4 اکتور تصویر تکان دهنده ای از اهمیت سایه آینده پدیده چشمی که در جنگ جهانی اول پیدا شد ترسیم می کند یعنی از نظامی که آن را زندگی کن و بگذار زندگی کنند نامیدند او به پژوهش تونی اشروس تاریخ نگار و جامعه شناس استناد میکند همه این را خوب میدانم که هنگام کریسمس، سربازان انگلیسی و آلمانی در منطقه بیطرف رفتارشان با هم دوستانه بود و با هم لبی هم تر می کردند. ولی عدک کمتر این را می دانند و به نظر من جالب تر است که قرارداد ناگفته و غیررسمی عدم خشونت زندگی کن و بگذار زندگی کنند، دستکم از 1914 تا دو سال، در خطوط جبهه دوچار فراز و نشیب بود از قول یک افسر ارشد بریتانیا هنگام بازی در سنگرها گفتند که از مشاهده سربازهای آلمانی که در آن سوی خط خود در تیررس دشمن این میرفتند متعجب شده است ظاهرا برای نفرات ما مهم نبود من پیش خود تصمیم گرفتم بعد از پیروزی پیروزیمان به چنین کاری خاطره دهم نباید باید اجازه چلین کار را میداشتند. از قرار معلوم اینها نمیفهمند که در جنگ هستند آشکارا هر دو طرف سیاست زندگی کن و بگذار زندگی کنند را پذیرفته بودند. در آن زمان هنوز نظریه بازی ها و معمای زندانی اختراع نشده بود. اما با نگاه به گذشته کاملا آشکار است. در آنجا چه می گذشت؟ و اکسلور تحلیل جالبی از آن به دست می دهد. در درگیری جنگ سنگر به سنگر آن زمان برای همه سایه آینده دراز بود. یعنی هر گروه از سربازان سنگرنشین انگلیسی این انتظار را داشت که تا ماه ها با این گروه خاص از سنگرنشین های آلمانی روبرو باشد. علاوه بر این آن سربازهایی ساده اصلا نمی چه وقت قرار است جا به جا البته اگر چنین قصی وجود می داشت. دستورات نظامی از نظر کسانی که آن را دریافت می کنند به شدت دل بخواهی متزرزل و غیرقابل درکند. شبه آینده چنان طولانی و نمعین بود که فضا را برای ایجاد یک نوع همکاری این با آن در مناسب میکرد. یعنی شرایط معادل یک بازی معمای زندانی بود. یادتان باشد برای اینکه یک معمای زندانی واقعی داشته باشیم، باید بازده ها به بندی خاصی را داشته باشند. هر دو باید همکاری دوجانبه جانبه یک یعنی سی را به کلک دوجانبه ترجیح دهند. حتی وقتی طرف مقابل همکاری می کند در صورتی که بشود قصر در رفت باز بهتر از کلک زد یعنی دی سی. مزور دیفکشن کوپریشن بدتر حالت وقتی است که در مقابل کلک طرف مقابل همکاری کنید. سی دی چیزی که ستاد کل انتظارش داد دارد کلک دو دوجانبه دیفکشن است دیفکشن آنها دوست دارند ببینند نفرات خودشان در هر فرصت ممکن با شدت و هدت سربازان آلمانی را با تیر میزنند از دیدگاه فرماندهان همکاری دو جانبه ناخوشایند است زیرا کمکی به برنده شدن آنها در جنگ نمیکنند اما از نظر سربازان هر دو طرف بسیار مطلوب است آنها نمیخواهند هدف تیر واقع شوند. باید پذیرفت که سربازان احتمالاً بر سر ترجیح اینکه در جنگ پیروز باشند نبازنده با فرماندهان به توافق رسیدند و این جز شرایط دیگری است که لازمه یک معمای زندانی واقعی است. اما این انتخابی نیست که هر فرد سرباز به آن روبرو باشد. آنچه او به عنوان یک فرد انجام می دهد، روی نتیجه کلی جنگ تأثیری ندارد. همکاری متقابل با فلان سرباز دشمن که در برابر شماست، در یک منطقه بیطرف اثر مستقیمی روی زندگیتان دارد و از کلک دو جانبه خیلی بهتر است. حتی اگر شما به دلیل وطن برستی یا رعایت اصول نظامی، در صورتی که برایتان خطری نداشته باشد، تا حدی ترجیح میدهید کلک بزنید. به نظر می رسد این وضعیت معمای زندانی واقعی است. میتوان انتظار داشت که چیزی مثل این با اندر پیدا شود و چنین هم می لزومی ندارد این راهبرد پایدار مندقی در هر جایی خاص از خطوط سنگر حتماً در خود این با اندر باشد. این با اندر اوزی از خانوادی راه خوب است که تلافی جو ولی با گذشتند و همهشان اگر از نظر فنی با ثبات به حساب نگیرند دست کم بعد از اینکه پیدا شدند به راحتی از بین نمی روند. برای مثال در منطقه ای بر اساس شرایط موجود این ستا به آن یکی در پیدا شد شب از سنگر بیرون می رویم گروه های آلمانی هم بیرون می آین. بنابراین از تیر و تیر خبری نیست بدترین چیز خون است. انداز هست شاید هفتش نفر را در یک جب بکشد یا اگر در سنگر بیفتد سه نقطه ولی ما هرگز دست بکار نمی شویم اگر آلمانی ها زیادی پررو رو بشوند روش طلاوی کردن آنها 3 تا در مقابل یکی ماست. برای هر یک از اعضای خانواده راهبردهای های این به آن در مهم است که بازیکن را به خاطر کلک مجازات کنند. تهدید به انتقام باید همواره وجود داشته باشد. نمایش توانایی انتقامجویی یکی ویژگی نظام زندگی کن و بگذار زندگی کنند است. در هر دو طرف یک تیرانداز مهارت در نشانگیری را به نمایش می گذارد. هدف نه سربازان دشمن بلکه به یک چیز بیجان جان دوروبر سربازان و دشمن است. کاری که در فیلم های هم دیده می شود. مثلا خاموش کردن شعلی شم با تیر. هیچ وقت به این سوال که چرا از دو بمب اتمی برای نابودی دو شهر استفاده شد، پاسخ قانع کننده ای ندادن. در عوض از فییکدان های آنها را ساختن زیاد صحبت کردند در حالی که می توانوانستند بمب ها را در موردی نمایشی مثل خاموش کردن تیر به تماشا بگذارند زیرنویس اینک می دانیم این کار برای واداشتن دولت ژاپن به تسلمیم فردی بود چون سه روز بعد اتمام حجت دولت شوروی به ژاپن پایان میفت و شوروی به ژاپن حمله می کرد. در حالی که آمریکا نمیخواست پای شوروی به ژاپن باز شود. دنبال این یک مشخصی مهم راهبردهای این به آن در مانند باگذشت بودن آنهاست. همانطور که دیدیم این ویژگی چیزی را که ممکن است به یک خصومت دوجانبه دراز مدت تبدیل شود فرو می نشاند. اهمیت فرو نشان در انتقامجویی را یک افسر انگلیسی در خاطراتش به خوبی شهر داده است. داشتیم ما هم چای میخوردیم که صداهای فریاد را شنیدیم و رفتیم ببینیم چه خبر است دیدیم سربازهای ما و آلمانیها هر کدام در خاکریزهای خودشان ایستاده‌اند نگاهان رگباری از آتش فرو فروری ولی به کسی آسیب نزد خب هر دو پایین رفتیم نفرات ما شروع کردند به ویرا گفتن به آلمانی ها که یک دفعه یک سرباز شجاع آلمانی رفت روی خاکریز و با صدای بلند گفت خیلی ما رو ببخشید امیدوارم کسی زخمی نشده باشه تقصیر ما نبود آتشبار این پروسیهای لعنتی بود. اکسلورد در مورد این عذرخواهی چنین نظر نظر می کند. چیزی بیش از تلاش برای جلوگیری از انتقام جویی است. این عذرخواهی حاک از تعاسف به خاطر آشفته کردن فضای اعتماد به یکدیگر است و نشان می دهد آسیب دیدن افراد ناراحت کننده است. یقیناً آن آلمانی بسیار شجاع و قابل تحسین بود اکسلورت همچنین بر اهمیت قابل پیش بینی بودن و حساب و کتابی که باعث حفظ چارچوب یک اعتماد دو جانبه می شود تاکید می کند یک نمونه دلنشین آن آتش غروب بود که از توپانهای انگلیس در بخش خاصی از خط مقدم با نظم خودکاری باریدن گرفت از زمان یک سرباز آلمانی بشنوید ساعت هفت می آمد، آنقدر سر ساعت که میشد ساعتت را با آن تنظیم کنی هدفش هیچ وقت تغییر نمیکرد بردش دقیق بود هرگز اینور و آنور یا جلو عقب نمیخورد حتی چند تا آدم فضول کمی قبل از ساعت هفت سینهخیز بیرون میرفتند تا انفجار آن را ببینن توپخانه آلمان هم درست همین کار را میکرد چنانکه در نوشته زیر از قول طرف انگلیسی آنها میبینید آنها آلمانی ها به قدری در انتخاب و هدف زمان آتش و تعداد دفعات آتش منظم بودند که کلونل جانز می دانست در کدام دقیقه پوکه بدی می افتد. محاسباتش خیلی دقیق بود و او قادر بود که پوکه را چیزی را که یک استوار تازه کار خطر بزرگی می شمرد بگیرد. چون می دانست قبل از اینکه به محل برخورد برسد پوکه ها جدا شدهاند. اکسلورد خاطر نشان می کند. این تشریفات ظاهری و آتشکشن های سر ساعت پیام دوگانه را رد و بدل می کند. برای فرماندهان بالادست نشان حمله است و برای دشمن نشان آشتی می شود با گفتگو به نظام زندگی کن و بگذار زندگی کنند دست یافت با نشستن بر سر میزگرد و آگاهان بررسی کردن راه در واقع چنین چیزی رخ نداده است فقط، به صورتی رشته ای از قراردادهای کوچک در پاسخ افراد به رفتار همدیگر پیدا شده است شاید سربازان اصلا از اینکه چنین پدیدهای در حال رشد بود بیخبر بودند نباید از این موضوع متعجب شویم راهبردهای درون کامپیوتر اکسلورد کاملا ناآگاهانه بودند از روی رفتارشان بود که آنها را خوب یا بد باگذشت یا بیگذشت کینتوز یا عکس آن به حساب میآوردیم کسانی که برنامه آنها را نوشتند ممکن است خود هر کدام از این ویژگی را داشته باشند که به این بحث مربوط نمی‌شود یک آدم خیلی بد می‌تواند به راحتی برنامه یک راهبرد خوب با گذشت و مهر ورزانه را بنویسد و برعکس خب یک راهبرد را رو از روی رفتارش تشخیص می‌دهند نه از روی انگیزه هایش، چون انگیزه ای ندارد و نه از روی شخصیت تهیه کنندهش، که تا زمان به افتادن آن برنامه در کامپیوتر به تدریج کمرنگ و جزئی از پس زمینه شده است یک برنامه کامپیوتری می تواند به صورت راهبردی رفتار کند بدون که از راهبردش یا در واقع از هیچ چیز با خبر باشد البته ما با مفهوم راه برد نویسی های ناآگاهانه یا دستکم با برنامه نویسی هایی که آگاهیشان شان بیربط است کاملا آشنایی داریم برنامه این در صفحات این کتاب به وفور یافت می شود. برنامه ای اکسلور در سراسر این کتاب مدل بسیار خوبی برای تصویری که ما از گیاهان و جانوران و در واقع از جنها داریم. بنابراین طبیعی است که بپرسیم آیا می توان نتیجه گیری خوش بینانه ای او درباره مهربانی، مهرورزی گذشت و مهربانی را شامل جهان طبیعت نیز بکنیم؟ پاسخ آری است. البته چنین است. تنها شرط این است که طبیعت باید گاهی بازی های زندانی را طور به راه بیاندازد که آینده آن دراز مدت باشد و بازی ها غیر مجموع صفر باشند. این شرایط به یقین در قلم رو به همه چیزهای زنده وجود دارد. هرگز کسی ادعا نکرده که باکتری یک برنامه آگاهانه دارد. ولی انگل باکتری همواره با میزبان خود درگیر بازی های مؤمای و دلیلی ندارد که ما نتوانیم صفتهای اکسلوردی مثل بخشندگی، مهروزی و غیره را به راهبرد آنها نسبت دهیم. اکسلورد و همیلتون میگویند که به طور عادی ممکن است باکتریهای های بیازار خوشخیم زیانکار گردند و حتی باعث افونت کشنده در فرد مجروح شوند. ممکن است نظر پزشک این باشد که به خاطر آن جراحت مقاومت طبیعی بدن طرف پایین آمده است. ولی شاید دلیل واقعی زیر سر بازی های معمای زندانی نهفته باشد شاید با آن باکتری ها از ان چیزی می رسد. ولی این را آشکار نمیکنند. در بازی بین انسان و باکتری سایه آینده معمولا دراز است زیرا از هر آدم فرضی این انتظار می روید. از هر جا که شروع کند سالها به زندگی ادامه دهد از طرفی در آدمی که جراحت شدیدی دارد ممکن است برای باکتری های مهمان سایه آینده بسیار کوتاه جلب کند بنابراین وسوسه کلک زدن به صورت انتخاب پر از پاداش همکاری دوجانبه خود را بنمایاند باز از منظوری نیست که آن باکتری در کلی کوچک و زیانکار خود این برنامه را می چیند. احتمالا انتخاب با استفاده از ابزارهای کاملا شیمیایی در نزهای پی در پی باکتری ها ده های سرنگشتی ساده را سرشته است. طبق نظر اکسلورد و همیلتون حتی گیاهان ممکن است انتقام جویی کنند. این هم آجکار ناگاهانه است. درخت انجیر و زنبور انجیر در یک رابطه نزدیک همکاری و مشارکت دارند. انجیری که شما میخورید در واقع یک میوه نیست. اگر از سوراخ کوچکی که در ته آن هست وارد شوید میبینید سطح گل کوچک سطح دیواره را پوشانده. برای این کار باید به اندازه زنبور انجیر کوچک شوید آنها ریزند خوشبختانه آنقدر ریز که وقت خوردن انجیر متوجهشان نمیشوید. آن انجیر یک گرمخانه تاریک دربسته برای گل هاست برای گردفشانی داخلی و تنها عاملی که میتواند گرده آنها را بیفشاند، زنبور های انجیرند بنابراین درخت از پناه دادن به آن زنبورها سودی آیدش می شود اما به زنبور چه می رسد؟ آنها در بعضی از آن گل های ریز تخ میگذارند که بعد نوزادشان آن گل را می خورد. آنها گل های دیگر درون آن انجیر را بارور می کنند. برای زنبور کلک یعنی تخم گذاری در تعداد زیادی از گل های یک انجیر و گرد در تعداد کمی از گلها، اما درخت انجیر چگونه می تلافی کند؟ بر اساس پژوهش اکس و همیلتان، معلوم شد است در بسیاری موارد اگر زنبوری که وارد یک انجیر میشود، شود به اندازه کافی گلها را برای دانه بارور نکند و در عوض در بیشترشان تخم بگذارد، درخت رشد آن انجیر را در مراحل اولی متوقف می کند به این ترتیب همه ایل و انبار آن زنبور از بین می روند. یک نمونه عجیب از یک برنامه این با آن در طبیعت را اریک فیشر در یک ماهی دو جنسیتی ماهی خاردار کشف کرده است برخلاف ما در این ماهی ها جنسیت در هنگام بستن نطفه توسط کروموزوم هایش تعین شود بلکه هر میتواند می تواند نقش نر یا ماده را داشته باشد در یک دوره تخم ریزی آنها اسپرم یا تخمک رها می کنند آنها زوجهای تک همسر را تشکیل می دهند و در آن زوج هر یک به نوبت نقش نر یا ماده را به عهده می گیرند اما ممکن است حدس بزنین که هر ماهی در صورت امکان ترجیح می دهد نقش نر را داشته باشد زیرا این نقش کم هزینه تر است به عبارت دیگر فردی که شریکش را تشویق کنند که بیشتر اوقات نقش ماده را بوطه بگیرد از سرمایه‌گذاری اقتصادی او در تخم ها کاملا بهره می میشود ولی امکانات خودش را جاهای دیگر خرج میکند کلا در جفت شدن با ماهی های دیگر در واقع چیزی که فیشر دیدیم بود که این ماهی ها یک نظام کاملا دقیق نوبتی را برقرار کردند اگر کار آنها را نمایشی از این به آن درب به شما بیاوریم، این درست همان چیز مرد نظر است و این کارشان پذیرفتنی زیرا از قرار معلوم، پای یک بازی معمای زندانی واقعی در میان است. البته تا حدی پیچیده تر. آوردن ورق همکاری، یعنی وقتی نوبت شماست که نقش مادر را داشته باشید، این نقش را بپذیرید، تلاش برای بازی کردن نقش نر، وقتی که نوبت شما بازی نقش ماده است، معادل آوردن ورق کلک است. کلک زدن تلافی دارد. دفعه بعد، وقتی نوبت شریکتان است که نقش ماده را بازی کند، جبران می کند یا اصلا رابطه را قطع می کند. فیشر در واقع مشاهده کرد در زوجهایی که نقش جنسی طرف این متعادل نیست، احتمال جدایی زیاد است. سؤالی که گاهی از طرف جامعه شناسان و روانشناسان مطرح می شود این است. وقتی در کشوری مثل انگلیس با آنها پولی در ازای آن پرداخت نمی شود چرا بعضی افراد خون اهدا می کنند از نظر من بعید از پاسخ را در منافع دو جانبی خودخواهی پنهان با مفهوم ساده آن در نظر بگیریم البته آنها که به طور منظم خون می دهند وقتی احتیاج به تزریق خون داشته باشند در اولویت قرار دارند ولی حتی اینطور هم نیست که به آنها ستاره های کوچک تلایی جایزه بدهند. شاید من سرم نمی شود ولی دلم می خواهد آن را موردی از ایسارگری صرف و صادقانه به حساب بیاورم. هرچه باشد به نظر میرسد رسد خفاش های ها مورد مناسبی برای مدل اکس باشند. ما این را از روی کار جی سی ویلکنسون در میابیم. همونطور که همه می دانند خوناشام های ها خون میخورند. پیدا کردن این قضا برایشان راحت نیست. ولی اگر موفق شوند دلی از ازا در می آورند وقت سهر بعضی ها ناموفق دست از پا دراستر با شکم خالی بر می گردند. در حالی که بعضی که موفق به یافتن تومه شده اند یک مقدار هم اضافی مکیده اند. شب بعد ممکن است فرق برگردد. به این ترتیب به نظر می رسد مورد امید بخشی از کمی ایسارگری دوجانبه باشد ویلکنسون متوجه شد هایی که شب موفقی داشتند گاهی با بالا آوردن در واقع به همراهان ناموفق خود خون اهدا کنند. از 100 مورد بالا آوردنی که ویلکنسون شاهد آن بود هفتاد و هفت مورد مادرانی بودند که بچه هایشان را تغذیه میکردند و موارد زیاد دیگری شامل خونرسانی به افراد خویشاوند ژنی میباشد با این حال مواردی وجود داشت که بین خفاش غیر غیرخویشاوند بود مواردی که توضیح خون خون را می کشد را بر نمی تافت. جالب توجه است که افراد درگیر در این موضوع اغلب حملانه بودند. غالبا فرصت های زیادی برای تعامل مکرر با یکدیگر در اختیار داشتند. همانطور که در معمای زندانی مکرر چنین است. اما آیا دیگر شروط برای معمای زندانی هم برآورده شده بود. جدول بازدهها در شکل چیزی است که انتظارش را داریم اگر آن شروط وجود می داشت. آیا واقعاً اقتصاد خفاش‌های خوناشام با جدولی که مد نظر داریم مطابقت دارد؟ ولینگسون میزان کاهش وزن ها بر اثر گرسنگی را مورد بررسی قرار داد. از روی آن زمانی را که طول می‌کشد یک خفاش کاملاً سیر از گرسنگی بمیرد و همه مراحل میانی آن را محاسبه کرد. به این وسیله توانست مقدار خون را بر حسب ساعت ادامه زندگی محاسبه کند. او نبا تعجب پیبرد میزان این انتقال بسته به میزان گرسنگی کشیدن خفاش دارد. مقدار معینی از خون برای یک خفاش بسیار گرسنگی کشیده میتواند ساعت بیشتری از عمر را به همراه بیاورد تا برای خفاشی که کمتر گرسته مانده است. به عبارت دیگر، گرچه عمل احی خون احتمال کاهش و عمر خون دهنده را بیشتر میکند. این کاهش در مقایسه با افزایش و عمری که به دریافت کننده میدهد، مقدار ناچیزیست بنابراین از نظر اقتصادی اقتصاد خوناشامی با قواعد معمای زندگی جور در میآید. ارزش خونی که اهدا کننده میدهد برای او کمتر است از ارزشی که همان مقدار خون برای گیرنده آن دارد در خفاشی های خوناشام گروه های اجتماعی مهندسند یک خوفاش در شبهای بدبیاری سود بسیار زیاد از یک هدیه خونی می برد. اما در شبهای مساعد سود کمتری از کلک زدن، خودداری کردن از دادن خون میبرد. البته اگر بتواند از مکافات آن در امان بماند. این حرف فقط وقتی منادر است که خوفاشها نوعی راه برد این با آن در را در پیش گیرند. بنابراین آیا شرایط دیگر برای پیدایش معامله به مثل این با آن در فراهم است؟ مخصوصا آیا این خوفاشها ها همدیگر را به عنوان افراد بشناسند؟ ویلینگسون با خوفاش های دربند آزمایشی کرد که نشان داد آنها هم دیگر رو می منکر هستی این بود که یک خوفاش را یک شب جدا کنند و بگذارند گرسنه بماند در حالی که به خوفاش های دیگر غذا می دادن. آن وقت آن خوفاش گرسته نگونبخت را بلانه برگردانند و ویلینگسون منتظر بود ببیند چه کسی به او غذا می داد. البته اگر کسی می‌داد، این آزمایش چندین بار تکرار شد. و ها به نوبت گرسنگی کشیدند نکته مهم بود که جمعیت خفاشهای در بند مخلوطی بود از دو گروه جداگانه خفاش که از قارهایی که چندین کیلومتر با هم فاصله داشتند گرفته بودند اگر خفاشا بتوانند دوستانشون را بشناسند آن خفاشی که به طور آزمایشی گرسنه نگه داشته میشد باید فقط آنهایی که اهل قاره خودش بودند تغذیهش می میکردند این دقیقا همان چیزی بود که رخ داد. سیزده مورد از اهدا دیده شد. در دوازده مورد دهنده خون از دوستان قدیم آن خفاشی گرسنه بودند که هم قار او بودند. تنها در یکی از سیزده مورد یک خبفاش به خفاش گرستهی که اهل قار خودش نبود قضا داد. البته شاید این تصادف باشد. اما می شود حالات غیر محتمل را محاسبه کرد. این احتمال به کمتر از یک در 500 میرسد کاملا با اطمینان می توان نتیجه گرفت که خفاش ها واقعا در قضا دادن دوستان قدیم را به بیگانه اهل قاره دیگر ترجیح می دهند در باره خفاش زیاد افسانه ساختند برای ارادتمندان گوتیک ویکتوریایی این خفاش نیروی سیاهی که شبها وحشت میآفرینند و با کشیدن شیره حیاتی یک زندگی سالم را فدای فرو نشاندن آتش خود می کنند اگر این تصور را با دیگر افسانه های ویکتوریایی که در آن چنگ و دندان طبیعت به خون آلود در هم بیامیزیم آیا نمی توان خفاش را منظر ژرف ترین حرازهای دنیای ژن خودخواه دانست نظر مرا بخواهید نسبت به همه افسانه ها شک دارم اگر بخواهیم از حقیقت سر در بیاوریم باید تحقیق کنیم چیزی که پیکری دانش داروینی در اختیار ما میگذارد فقط جزئیات پر و تفصیل در مورد موجودات عالی نیست چیزی دقیقتر و با است درک اصول اما اگر ما به افسانه نیاز داریم واقعیت های مربوط به خفاش داستانی اخلاقی هم برای من دارد برای خود خفاش اینطور نیست که فقط خون خون را به سمت خود بکشد آنها از پیوند های فراتر می روند و پیوند وفای جاویدان برادران خونی را بین خود برقرار می کنند. خب فاش پیشگامان استورعی جدید باشند. استورعی شراکت و همکاری های آنها می این پیام مهرافرین را به همراه داشته باشد که حتی وقتی سکان در دست ژن خود است آدم خوب می موفق باشند.